حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به تر علا کبادار تر بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل بندی. ازبا که دلب سبزه دچيله توی دنیا سلام به همگی حال احوالتون چطوره خوبین امروز یک شنبه نهم اسفند ماه و این رادیو پس شماره 991 که دارید میشنن خب چه خبر خوشین؟ چیکارا میکن؟ چی شد پس؟ آقا استوانه های نظام چرا اینجوری شدن؟ الان کلن از استوانه ها یه دونه استوانه مونده از صبح داره همیجور لقمی خوره الازم ممکنه اونم بیفته چه وضعیتی شده؟ این آقای حداد عادلم توی انتخابات مجلس تا های لیست انگلیسی اومد بالا ولی بازم افتاد پایین، حذف شد، دوباره اومد بالا، دوباره نمی... الان نمیدونیم دقیقا کجای کاره. از حضورتون که الان کلاً مجلس توی تهران یه یک دست انگلیسیان همه. احتمالاً تو مجلس هم دیگه انگلیسی نطخ میکنن دیگه به زبون انگلیسی. مملکت واقعا داره به کجا میره؟ موعظم له کجاست؟ چرا یهو بصیرت ملت رو وکش کرد؟ اینا همه سوالای بدون جوابه واقعا حالا محمد شما منتظریم نتایج نهایی اعلام بشه ببینیم این یه دونه آقای جنتی بالاخره میمونه توی لیست خبرگان یا نه ولی خدا آغوبته ها و شهرهای بزرگی مثل اصفهان که قاطعانه به لیست امید رای دادن ختم به خیر کنه حالا تا حالا مونده تا شرای نگهبان بخواد مهر تعییدشو بزنه پای کل این انتخابات ولی خب تا همین الانشم خداوکیلی نتایج اینقدر عجیب غریب بوده دهن شرای نگهبان تا لوزتین همجی باز مونده دیگه آخ آخ آخ, اخ, اخ تونروها رو بگو بای بای بای کجا بخوان تلافیشو در بیارن فقط خدا میدونه به خدا اما حواشی این انتخابات از دیروز پی روز خب خیلی زیاد بود و توی فضای اجتماعی توی فیسبوک و تویتر و این برمون هم برم بچه ها کلی مزه می و برای همین بر بچه ها الی سعید و مهرسا میخوان براتون از تویترهای این یکی دو روزه یه چند تا تویترهای خوب رو بچه ها برامون جدا کنیم بخونیم ببینیم چه خبر بوده سلام فرش جان سلام مرسا هایزنبرگ نوشته که من موندم جنتی صد سال دیگه چه جوری روش میشه ماجرای هفته اسفند رو برای مردم تحریف <تصفيق> کنه <تصفيق> بله خانم فاطمه بیکپور باز بلی بله بله گفتی ها ایلی بله شیه آره سلام علیکم سلام سلام خوبی. سلام خوبی بگو. بگو. خانم فاطمه بیکپور توییت کرده بودن که مرزی دستجردی فاطمه عالیا فاطمه رهبر زهره الهیان و لاله افتخاری انشاءالله از این به بعد امر خانداری و شوهرداری رو درست انجام بدن در راستای اون صحبتشون که خانم رو نباید برن به بچه داری شوهر داری برسند آره این برای همون بوده توییت جواب اون بوده بله مستر کمل هم نوشته سلام سلام حال شما خوبی چ خبر خوب مستر کمل نوشته تازه این لیست امیدمون بود اگه با تیم سالان اومده بودیم که فاتحه خونده بود هم توییت کرده به نظرم حالا که کوچک زاده و رسایی و بقیه دوستان انقلاب بیکار شدن برن سوریه از اسلام دفاع کنن اینجا بیکار بمونن واسه چی خانم جان شفته نوشتم به مامان <تصفح> خب <خود> اسمش مامان <تصفح> به مامان گفتم باید به این مجلس امیدوار بود شاید فرجی شد گفت ما مجلس ششم رو هم دیدیم که بعدش چی شد خوب نیست مادر آدم حافظ تاریخش اینقدر قوی باشه <تصفح> مکتوب خم. نوشته علمای قوم کشف کردن بین عدد 29 و سی عدد هست به نام غلام علی حداد چاره آلوچه توییت کرده از بهارستان رد شدم جلوی مجلس یه بنر زده بودن نوشته بود با مدیریت جدید بله، ای بابا هم نیست بله، خوب بله، متهم ردیف دوم نوشته بود که به اساس آخرین اخبار اصولگراین در تهران پیشی گرفتن و دارم با پیشی بازی میکنم پیشی پیشی پیشی بیا اینجا پیشی بچه ها بودو این دیگه احسان نوشته بود که شنیده ها از حصف حداد عادل جنتی گزدی و مصباح حکایت داره میخواستیم مسلس جیم رو حصف کنیم مربع حجیم هست شد نرگست هم گفته از دفعه بعد شورای نگهبان رای دهنده ها رو هم تایید سلاییت میکنه و آقای بیروز سمت بیگی توییت کرده بودن ولی به هم بازی داره خطرناک میشه هم جنتی هم سندی الان زخوردن خوردن از این به بعد پوست روحانی است هم حسن هم رزا شد اون بود و در آخر مهتاد نوشته هدیه رو وا کرده حصف مصباح حصف مصباح دیگه <تصفيق> امیتو که کنسرت دیشب ابیه از همه میگن از بمسب <تصفيق> <تصفيق> هدیه رو و کرده از بمسب دیگه اینا اون بچهایی که داشتن فیلم میگرفتن از این کنسرت زحمت کشیدن و اضافه کردن اما پل جواهرونه به رنگ اما خوش به ظاهر که شکست به دستش افتاد به دست اشتر که از یاد که از یا حزم مصبا حزم مصبا <تصفيق> فرشی جان سلام آقا میزه اینگه جنتی و مصبا میخوان ترانه نجاتشون رو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> چی والا دیگه اینا بر, بر بچه ها کلن انتخابات رو با انتخابات استیج همه رو قاطی کردن دیگه این نتایج رو البته یه جوری همچی با قطع چکون اعلام میکنن آدم واقعا نگران این دو عزیز میشه هرچی باشه ما سن و سالی ازشون گذشته آقا جنتی اومد با تحمل این همه استرس و بنده حق بندگان و خدا ندارن دیگه حالا هر چی قسمت باشه دیگه ببینیم چی میشه اگر انتخ... اخبار انتخابات حواستون پات نکرده باشه و دیروز برنامه دنبال کرده باشین میدونین که ما این هفته داریم در مورد انتظار کشیدن با هم صحبت کنیم انتظار که دست بر غذا این یکی دو روز هممون برای شنیدن نتایج نهایی انتخابات تجربهش کردیم اما امروز میخوایم در مورد یکی از شناخته شده ترین مسادیق انتظار با هم صحبت کنیم که اونم چیزی نیست بجز پدیده بله همین صفحای مختلفی که برای مقاصد مختلف تشکیل میشه و آدم ناچار به انتظار کشیدن در اونجا هستن تا نوبت بهشون برسه و کارشون انجام بشه فرق نمی کنم صفحه نون باشه، صفحه دستشوی باشه، صفحه انتخابات باشه، صفحه رعی دادن باشه فرق نمی همین ابتدای برنامه یک سلام و مخصوص عرض میکنیم خدمت همه اونایی که چه پشت فرمون؟ و در بین صفوف ماشین ها توی ترافیک باشند و چه توی صف نونوایی وایستاده باشن اهل تو صف زدن و کمتر کردن زمان انتظار خودشون به قیمت بیشتر کردن زمان انتظار بقیه نیستن واقعا دم شما گرم کار درستو شما میکنین خانما آقای دکتر خانم آقا, آقا، پسرا من نمیدونم یا این برنامه های تلویزیون و این سریالا... سریالایی که تو تلویزیون نشون میده اینو ما بد می اینا رو یا بعضی از کارشناسان عزیز وطنی این برنامه ها رو چپکی می‌بینن نمیدونیم چه جوریه شما فکر کن آقا یه برنامه های سیما اینقدر غیر جذابه سر ندیدنش ندیدنشون دعواست بعد یه آقای کارشناسی به اسم آقای اومدن تو همین تلویزیون دارن تو برنامه هفت تعریف می‌کنن که رفته توی دانشگاه تو پاکستان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 بله سکسی تلویزیون مدل پولی داشتن گوش کنید ببینید چی میگن گمانتون با vai این برنامشون بچه‌مون با تو دانشگاه بنورالیه پاکستان کمه خارجی‌ها و اینا بودن گفتم چطور گفت <تصفح> خیلی سکس خشنی دارید آه. و این اصلا آخ آخ این سکسی که شما دارید بحث شد پیدا می‌کنه تو فیلممون خالصه قاطع بدنی به بازیگر خیلی خشنه سکسش خیلی خشنه لباس به شدت خشنه دیالوگ‌ها به خشنه این همون برای هم فهمند یعنی در واقع معنای جنسی داره سادیسمی جنسی هست اینا بله آخه کارشناس با تو رو خدا شما اگه نصابی سراغ داری که میتونه دیشه ما را هم اون سمتی که دیشه شما از تنظیم کنه خب شما رو بده دل آمد کو شما مطمئنی تلویزیون ایران رو نگاه می‌کنی مطمئنی منم شبکه نمیدونم پرن فلان رو نگاه نمی‌کنی نچرخیده یه سمت دیگه اینا که میگی ما تلویزیون ایران نیستا سکس خشن و اینا ما. حالا جالب اگه برید سووابق همین آقای فیاضو نگاه کنید می‌بینید از نظرشون حتی آقای مطهری نه علیشون شونا باباشون بله آیت الله مطهری هم از نظر جون غرض هستن تو فلسفه غرب گیر کردن دیگه شما خودتون تا ته همین مسیر رو برین دیگه در صورت ما همینجا ضمن پافشاری بر موزه شماره نصاب خواهیمون از مردمم خواهش میکنیم خیلی با هم خشن برخورد نکنن خصوصا های این برنامه های تلویزیونی و اینا هست که مس اون بخشایی که دیدم که خشن بودن دیگه که بعضیا با دیدن فوش و فوشکاری هم تحریک میشن عجیب نیست تا وقتی بود پوشیدن خانمها برای سردار رادان اونقدر فشار آور بود دیگه خوشونت که دیگه چی دیگه والا موسیقی oh yes. اقارشید مع از ازتون خیلی فاصله ندارم و همین نزدیکیاتون رو منم این کار شیرین قندی دارم اگه خواستین با هم تماس بگیریم برا شبهای تون بفرستم دلتون برای ایران تنگ شده دل ما هم تنگ شده ولی برنامه همیشه ما رو تنها نداشته خدا ایول نکن آقا خیلی خوب باشه میخوا یه جعبه شییرنی بفرسته بعد مصرف شخصی خودم من ببرم خونه شغش کرده نمیخواد له مغازه اشو به آقا یکی دو تا ماش... ب... هم چه نذیم ماش د مختص کارآموزا میفرسن ماشاءالله میدونین که تعدادتونم خیلی کمه بعد کل مغازاش فروشی رو همه رو بفرسه برام مختص خودشون نره بله نارنجک نارنجک این, این مشهدی بود این مشهدی بود ب نخامهی نخامهی من منظورشون بوده بفرمایید دوستان عزیزان ترجمه نکنید خیلی ب... ب... حالا سعی میکنن دوستان این دوست عزیز بفرستند من تشکر میکنم دوست عزیز خیلی شما حالا انقدر اذیت نکنید خودتونه بخوام بر کل رادیو بخوام بفرستین خیلی ممنونم از تماستون دم شما گرم که یاد ما بودید او oh yes. oh yes. سعید سلام دوباره سلام میکروفونت میکروفون بسته بود سلام مرسی خوب و هوا و هوا چطوره؟ سرد الان هم که بارون نم نم شروع کرده به باریدن همی جا؟ آره آره بالا بودن داشت بارون میبرید اه، من نهیدم بیرون نبودم من چپیده بودم تو اتاق خب آه... از ایران چه خبر؟ از ایران بله, بله بله هفته گذشته افسایش دمای زیادی رو جای مختلف ایران داشتیم فرشید که خب به نظر میرسه کمی برای روزای اول اسفند ماه زود و غیر عادی باشه امه. ولی از فردا با نفوذ یه توده هوای سرد و کم فشار از سمت شمال کاهش دما به خصوص نواحی ساحلی دریای خزر و استان‌های شمال شرقی رو داریم خنک بل... میشه پس اونجا بله خنک‌تر میشه و در کنار اون بارندگی‌ها بارندگی خوبی رو هم توستان های شمالی و شرقی کشور داریم برده. میزان این بارندگی ها توستان های خراسان شمالی و خراسان رضوی زیادتره به خصوص شهر مشهد فردا بیشترین میزان بارش از اول زمستون تا امروز رو داره شهر اه... شما ایلی آره شهر ایلی بله که امیدواریم این بارندگی یا اتفاق خوبی واسه مردم کشاورزا و کلن کشاورزی این استان باشه. امیدواریم پس از فردا هوا یه خود خکتر و با بارندگی آره و... در کل ایران خکتر میشه حالا بعضی جاها بارندگی هم داریم در زم امروز ایران شهر با سی درجه و تبریز با هشت درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سرترین جاهای ایران بودن. شهر شما بودیم بله دیگه سگ <تصفيق> تبریز و... و... ما اونجا آموزش دیدم و سپراک. <تصفيق> جرم‌ترین کجا بود؟ ایران شهر. ایران شهر. ممنونم ازت سعید. برو بریم. بابا فارسی جون کلا برنامه‌ینه اونا رأی نمیارن بریزن تو خیابون اعتراض کنن بعد ما برین با باتوم حسابی بزنی اشنو نه ببین خیال خامی مجلس مجلسو ممکنه تحویلتون بدن ولی باتومو که دیگه تحویلتون نمیدن که اونام تو خیابون بریزن تاج باتومو کتک می‌خوری خیالت راحت حالا این خبرو نیست ما بریم سراغ برنامه امروز و موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم انتظار در صف یک نوع انتظار نچندان مدرن در یک پدیده دراز پیچ در پیچ ویانی شماره 991 بدانید و آگاه باشید که در انتظار در صف است که شما به آنها دقت نمی کنید و اگر بدانید که در تاریخ ایران بعد از انقلاب چند خاستگاری در صف صورت گرفته و چه درد دلهایی در این صفها باعث خالی شدن حضار شده است و چندین نظام حکومتی در آنها جوری در بحثهای سیاسی صفی بالا و پایین شده است لکن به هیچ وجه به انتظارهای صفی با تمسخر نگاه نمی کردید حاج که همه ما در نهایت از ته صف ماندگانیم ام زون برای صرفاوی پیچ در پیچ و لای لایه حسابی دلتنگ شده های رادیو پس داد داد داد به ما بگین چه نوع انتظارهایی رو بیشتر تو زندگیتون تجربه کردین و کدوم انتظارها بوده که از همه بیشتر باعث ناراحتی شما شده انتظار دیدن یار انتظار رسیدن به زنگ آخر مدرسه انتظار اعلام نتایج انتخابات انتظار برای سر ما که بیاد تو حساب دیگه نمیدونم انتظار برای جواب یه مسیج فیسبوکی یا یه اس انتظار برای تعطیلات نوروز کدومش به اون بگین برای گذروندن مواقع انتظار چیکار می‌کنین یه جا منتظرین میخوایم مثلا وقت بگذرونید آدامس می جایین، گیم بازی می کنین، چورت می زنین، تصمیم می دازین چی می انتظار کشیدن؟ عزیتتون نکنه زودتر بگذره بره. الی؟ راهای ارتباطی برنامه رو براتون میگم ما 2420, 22, 11, 24, 2420, 22, 11, 24, 16, و 2420, 22, 22, 26, 21, 79, و ما هست ات فاز که مردم میتونن لود فرند عکس هاشون رو صداهاشون رو ویدیوهاشون رو برای ما بفرستند به تلگراممون تا ما بعد از حالا این داستان شروع انتخاباتی اونا رو دوباره رو نمایی کنیم در بله. اینستاگراممون چون این دو سه روز کمکاری داشتیم به خاطر اینکه که محتودیت شور انتخاباتی, شور شور انتخاباتی داریم بله. <laughs> بله برنامه استیک من یک توضیح کوتاه بدم که سه شنبه ها برنامه استیک رو در رادیو رو خواهیم داشت لطف کنید اصلا داستان برنامه استیک رو یک بار توضیح بدم که چیه شما باید لطف کنید طرز تهیه غذای محلی خودتون رو با لحجه محلی خودتون برای ما بفرستید صداهاتون رو بفرستید اگه دوست داشتید عکس از غذاتون بگیرید فیلم هم از غذاتون بگیرید برامون بفرستید. هم میتونید به شما تلفن های ما تماس بگیرید هم میتونید از طریق اپلیکیشن با ما تماس بگیرید و صداتون رو ضبط کنید هم از طریق تلگرام که الی بهش اشاره کرد آقا فش شما که صدای ما رو پخش نمی کنی هیچ انتظاری بدترز که زنره در این نور باششه و هفت ما نبینی. رو نبیین. کلتون عصیبهشکی نکنه هیچ انتظاری مثل انتظار یار نیست روز آخی. خوبی داشته آخه خوش به حال یارتون که یه همچین همسر خوب و چشبرایی تو خونه داره ولی خودمونی ما اینکه هر هفت ماه بار آدم همسرش ببینه خودش باز میشه طرف کلی عزیزتر بشه ولی بهبح بهبح به این انتظار به این انتظار یا روش قوین هابحبحبع به این اشقه. آوریم از کجا بگم قصه این عشق پاک و بیقرار رو ماجرای این احساس مندگار رو رد شدن از جده های بی سوار رو ای عشق من اولین سلام ترگی از آرامش اون چه شد حسه آشنایی بین من با نگات لمسه رویای زیبا رو و شونه هاد ای عشق من بزن بی تو من دیزارم از این دنیا چشم تو ببند و بیدار نشو از این رویاد تا وقتی با منی خوشبختی اینجا بله راجی به انتظار داریم حرف میزنیم و امروز راجی به انتظار توی صف دیگه صف یه چیزی که همه باش آشناهیم یکی از انواع انتظار که خب معاملانم زیاد باش سرکار داریم همین انتظار کشنن توی صفه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 دیگه هممون هم میریم دیگه کمتر کسیه که اون لحظات سخت و طاقت فرسا رو این پشت در داشی تمول نکرده باشه خیلی سخته یعنی حداقل تو خونه و محیط کارم تجربه نکرده باشین چه میدونم مثلا تو تعطیلات تو سیزده بدر مثلا تو پارک سیزده بدر که میره تجربه کرده دیگه یادتون اومد آ این جور سفا رو هیچجوری نمیشه پیچوند چون همه با چنگ و دندون از نوبت خودشون دفاع میکنن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 دیدن مردم زیاد دارن با ما مواجهت میکنن، نه صفحه بیجات مثل تولانی شده، صفحهای زنون مردونه، از هم جدا کردن این فرصت ها کمتر شده ولی خب قدیما تو صف ملت هم نگر آشنا آشنایی می میشدن، گپ میزدند، حرف میزدند، شماره میزدند، اشیا میمیدند، بودج ترا میمیدند تو صفح با هم صحبت میکردند، قرار مدار میزدند. خالص خیلی از ازدواجار رو صفحی این میکردی تا ایش به صفح چیزی خات میشد. الان دی مو این جنبه های مثبت صفح خیلی جا از من رفته. واقعا خیلی یه جور دیگه شده کلن صفحا انتظار تو صفحه توالت عمومی <تصفيق> وقتی که داری میترکی اینه این همین آقا این این این خدا همين. زود باشین بردم. آقای تا رو خدا یکی نوبت چه بده به این بنده خدا بابا بیا برو نریزه حالا وسط برنامه خیلی فشار روش بود بیچاره بمیرم الهی <تصفح> چند ساعت ما تو این صفی؟ من کنم هنوز آفتاب بود که ما آمدیم اینجا من خودم دیدم اون ور تو آس من بود بابا میجا الان در حساب پدرمون در ما چای صاف جلو نمیره چیکار داری بابا مگی داره بد میگذنه به ناوال خب آخه دیگه خاصا شدیم ولی ما چارتو قرس مرس بخوریم دیگه بی گیرت میندازه میگن بشین سبزی باکو خیلی آخ... عم بابا به زرت کفمونو بزنه ببی یه سوالی من یادم رفت این صاف کی بود چرا صفه چی ساعت بود بابا رای بود منم یادم رفته بخوادم میخوای از این با تا خاوم پیرا بپرسین سرحت باشه ها خود کهسبچ نکن من توی صففه دیگه دیدمشون رفتم زلو خیلی تو بیافق بودم خیلیشون کار کار رو میشه ولی اون چهارقدر چهار خیلی خوبه آمت برم بپرسم میگ کن بابا دیگه بابا چی صفحه رفت داد بیا این قدر گور زدی فکر کنم داره میره جلوسط من چیکار کنم ببین برم باش. بزره. خیلی خوشم اومده بیر بابا خودتو سبرو چی نکن نیگه هی hey بهش میگم گوش نمیده اینا پا نمیدن چی؟ حالا بازه برم خیلی ماب گنجیش کم که جامع نگه داری یا بابا آره بابا عجیب داده بدی منم بیام کاری نکنی یا باشه باشه بالا. <تصحیح> راستش به نظر من انتظار کشیدن با بیشتر شدن سن کار آسونتری میشه یعنی مثلا ننجونم اگه میسپوره که براش دو تانون نون بخرم یه وقتی که دارم میرم خونشون میتونه تا دو هفته بعد که میخوام برم سرشون بذارم انتظار بکشه قرم نزنه در عوض این بچه دوستم که هفت سالشه اگه اول مهمونی بهش بگی آیدین جان خاله اگه آروم باشی آخر مهمونی بهت جایزه هر پنج دقیقه یه بار میاد آخر مهمونی نشده هنوز نمی دونم از دست این بچه چی میکشه ولی من که هر بار آرزو میکنم زودتر پیرشه، شه بلکه هم یاد بگیره چطور باید منتظر بود حالا اینکه وقتی اون پیر میشه ماها کجای و منتظر چی هستیم بمانند بعد سالی انتظار آمد شراغم گفت چرا پای برهن آمدی هم تو باغم زرت و زرت شر می نویسید، تازه می سازی تو داغم قصد آن داری که تا خاموش گردانی چراغم گفتم از داد و فقان من چه دیدی میزنی با این چماغم. یک دفعه مشتی حواله می کنی سوی دماغم یا به قادت می هر اون چه بود توی اتاق گفت مفنداری جدایم عاجزم پیر و چلاغم. از برای کشتنت چالاک و فرز و سردماغ گفتم اله بشنو از من آخرین شعر کتاب گر زوتشانسی به دام تو فتادم آید آن روزی ز من خواهی برس آخر بداد آورین آورین آوری. فریورز غریب سلام چه خبرها؟ سلام سلام به همه دوستان و همکاران شنونده ها فرشید از شهر قوم یه خبر تیراندازی داشتیم به امیرحسین صادقی آره بازیکن تیم سبا همون تیم علی دایی دیروز موقع تمرین این تیم عجب چه جوری به چه دلیل آخه هنوز معلومی چه جوری اما از بیرون از ورزشگاه بوده شلیک با تفنگ ساچمه ای که بازوی صادق سوراخ شده ترخ خبرها آره اما خطر خوشبختانه جدی نیست جالبه وقتی پلیس وارد ورزشگاه شده بود واسه تحقیق و بررسی یه تیر دیگه از بیرون ورزشگاه شلیک میشه به سمت صادقی کاپیتان پیشین پیشینه که خوشبختانه آره به هدف نمیخوره. رسما داره فوتبال اینا شبیه فیلم ها میشه نوبر والله. دیگه چه خبرفری بود؟ فرید بعد از اینکه هفته پی چند تا از بازیکن‌های سرخابی به خاطر توحین و فحاشی کار برای فضای مجازی که خبرش هم دادیم از این فضای کناره گیری کردن امروز هم خبر اومده که علیه پروینم هم میخواد فعالیتش رو تو فضای مجازی کم کنه سلطان امروز گفته به بچه ها گفتم منو از اینستاگرام در بیارن پردیم قبلا هم در این مورد صحبت هایی کرده با سیما که اگر محافظی بخشی از حده گوش بدیم گوش کنیم این موبایل یه مقدار چیز شده زر شده واسه این پیشکت و تا و ورزش اینا یه مقدار اینا دردسر شده مخصوصا هم ورزش شب سه و چه بعد پایین بمونم پردست بخواد تمرین کنه کسل و خسته دیگه آره دیگه می رو حرف سلطان حرف بذاریم دیگه کار از خودمون بدیم بگذیم نهره سلطانه دیگه پسیر امروز یه خبرم داشتیم از بیمارستانی که سا بدالملکی پیش برتریه. خبر اومده که برای بهبودی وضع روحی دختر ملی پوش رابیه ایران که توی فالات رانندگی آسیب جدی دیده یه مربی خنده استکام شده. بله دمشون گرم نه به اون که اون موقع اصلا هیچ خبری نبود و هیچ کی ازش خبری نداشت و بیمه و اینا همجوری رو هوا نه اینکه مربی خنده م میکنه والا ما نفهمیدیم مربی خنده دقیقا چی کار میکنه قلقلکشون میده ولی خب باز دمشون گرم خوبه دیگه یادون باشه بعدن بفرسیم ازشون آره ممنونم ازت فریدروز عزیز باد خدا میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار Oh my, oh my, oh my God, this girl straight and this girl knock, nah. tipsy off that piece of rock, like, la, la, la, ching-a-lang-lang, ching a lang a -lang -lang. jeans so tight, I can see a little change, do your thing, thing, girl, do that thing, like, اگل گلی سلام 21 کرسی یک شنبه شب را ضمن کف کردن از نتایج انتخابات تا 7 ما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 و نظر کارشناسان که با این وضعی که کهی کهیزی هم تو انتخابات شرکت میکند مردم بهش نه میگفتند و رشته پانزده درصدی سقط جنین در ایران ده ده ماه گذشته و نگرانی ها شدن دل مقام معظم رهبری به خاطر اینکه مردم واسه دل ایشون هم که شده بچه ها نگه نمیدارن سرخط مهمترین خبرهابی امروز و امشب را شامل میشدند اینک مشروف خبرها با همکارم ب بوسلام.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 در آوردن سه چهار میلیون تومان در ماه اصلاً کاری ندارد و خوشبختانه کارگران عزیز ما در حال حاضر در رفاه نسلی خوبی به سر میبرند پایان رو اخبار ای میکروفون میکروفون صلا رو بگیرین کارشناس شما کیه من میخوام ببینمش کارشناس کجا بود خودم ای... نوشتم اینارو بل بل بل. چی آخه <تصفيق> این همه کارشناس هست چرا خودتون مینویسین آخه هر کی زنگ زدم گفت ای... وقت ندارم منتظر نتیجه انتخاباتم خوبه اینا که خودتون نوشتین اشتباهه آقای میکروفون صلا ببین بولبول بول. من یه چیزی مینویسم که این برنامه ای... سدپا بمونه دردسر ای... نمیخوام بابا ای... چی بگم من گیر این ای چی بهتره من رفتم شب خود برو برو من خونه دل خوردم این برنامه را به اینجا رسوندم الکی نمیام که گذک بدم دست کسی که ای میان علکی که گیر میده به ما ای. صحبت از انتظار قربونت منم انتظار دارم بعد تخت و برنامه شما بری برنامه رو بس بسپرید دست این جوانای خوب علی سعید مرسا خیلی هم کارشون عالیه ما راضی هستیم قربونت بله برو استراحت کن عزیزم قربونت ببرم میرم دیگه آقا دارم میرم دیگه بابای حسن انگلیسی قربونت برام حسن جان من نمیدونم س... بر ها سعید الی مرسا چه کاری میکنی چرا به فامیلاتون میگین تماس بگیرن خیلی کار زشتی این کار خود چیزی میکنین هی این تلفنها مشکوکه واقعا آقا من که گفتم من دارم میرم دیگه میرم من دارم میرم آقا میرم اصلا دیگه بر نمیگردم کله هم اجمعین شو قربونت شو خیلی ممنونم البته از تماس تو لطف کردید دیگه به بر روایت های موجود امروز مصادف با 9 اصفان ماه 1394 در تقویم ایرانی با عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده است گفتنیست مصرف کنندگان ایرانی بعد از اطلاع از نامگذاری این روز به نام آنان به افتاد فکر کردن در برابر دوربین مخفی قرار گرفتند و کلی تلاش کردند تا این دوربین را پیدا کنند یا حداقل از زمان پخش این برنامه مطلع شوند قوید کنندگان ایرانی هم بعد از اینکه متوجه شدند چون چنین نامگذاری برای این روز انجام شده است، با الفاظی چون بیشین بابا حال نداری و مصرف کننده هم مگه حقوق هو داره آخه نسبت به این روز اعلام موضع کرده، این روز را به همه گه مصرف کنندگان عزیز تبریک گفتند.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 وی با ارسال پیام های مشکوک برای افراد و باز شدن این پیام ها توسط اونها اقدام به نسب نرمفزاری بر روی گوشی های هم را... بله یه لینک می توی حالا تلگرام یا وایبر یا حالا هر جای دیگه با عنوان آخرین پارتی خصوصی فلان بازیگر کلیک کن از اینا که همجری یه میلیون تا هر روز می بینید بعد طرف کلیک می کرده مثل شماهایی که کلیک می که برم اصلا تو پارتی خصوصی که اینجوری می شده. من اونی که فشار دادم و طبلاه توسط اون لینک باعث شد که مبلغ دوواغ از حساب آمد داشت نزد که دهمین تومن بله حالا ها هی ما بگیم آقا هر لینکی اومد همدی زرتی روش کلیک نکنین هی hey شما گوش ندین هی hey برین کلیک کنین هر چی میبینین برین کلیک کنید تا هم اینجوری حساب بانکیتون خالی بشه هم عکس و فیلم های خصوصیتون بیفته دست تکر و بعدش هم پخش بشه تو اینترنت به خب نکنید نکنیم نکنند. به خدا دیدن پارتی خصوصی فلان بازیگر رو نمیدونم پشت های مثبت 18 مسابقه یه نمیدونم استیج و استیک کن و اینا ارزش شدن رو نداره ای ها میگیم ای شما گوش ندی آیا از انتظارهای جانکاه در های طولانی به سطوح آمده اید؟ آیا مایل نیستی بیش از این وقت گرامبه های خود را با رعایت نوبت در صفح به پای وقت بیمقدار دیگران هدر در بدهید دیگر نگران نباشید. فقط کافیست با مؤسسه یا آموزشی صفش کنان تماس گرفته و در دوره های آموزشی نفوذ در صف ثبت نام نمایید. دوره فشرده توصف زنی با تکنیک قسم و آگه... <تصفيق>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 بله خانم بفرم. جای من اینجا جلوی شما نبود ببخشید فکر نبکنم چه مطمئنی امیشه بیشتر فکر کنی فکر کنم اینجا جلوی خیلی سیز و دوره های نفوز و گام به گام در صف با متد منحصر به فرده صفش کنان با مؤسسه آموزشی صفش کنان دیگر وقت گرانبهای خود را در صف به هدر ندهید صفش کنان پرسیدم آخ چه جوری سال هشتش یه شببه همه ریا رو شمردن ولی حالا نمیتونن تو یه روز تمش کنم اون هم در مدف من میگه که این سوال کلی آدم بود سال هش ریختن تو خیابون هیچ چیزی دیگه من حرفی نداشتم بهش بگم بله دیگه اون زمان کلم از جای بزارارت کشور اوس معمود مثل خودش خیلی فرز به قول معروف خیلیطر فرز این ها بودن جاددی و جگی ریا رو شماردده این که الان میشکنه خب دییل به کار نمیدندی که با همین این کشیده. حالا تموم میشه دیگه دیگه به زودی تا همین روز همین فهم کنم تا همین امشب دیگه تموم میشه اما هر جا صف وجود داشته باشه یه هم هستن که به شیوه های مختلف میخوان این صف رو دور بزنن و بپیجونن اینجور آدم ها همون هستن که وقتی میشینن پشت فرمون ماشین تبدیل میشن به چی؟ ای گفتی نه نه اون که بده حالا تبدیل میشن بچه زرنگ اون بچه زرنگ اینا مثلا پشت چراغ قرمز ای بندوزن توی لاین بغلیو برن جلوی جلوی صف رو خط اوور وایسن که مثلا به محض سب شدن چراغ اولی ماشینی باشن که از چهارو رد میشن فکر میکنن اینو خیلی زرنگن قفل از اینکه این کار اسمش زرنگی نیست اسمش چیه این حالا هر چی ما که حرف بعد نمیزنیم والا تو برنامه هر چی حد زرنگی نیست اسمش دیگه چه کاری یا مثلا دیدین بعضی ها وقتی مثلا میبینن یه صفه طولانی ماشین میخواد از اوتوبان بپیچه مثلا توی خروجی میخواد برن توی خروجی میرن از سمت چپ سبغت میگیرن از همه سبغت میگیرن جلوی جلو میرن جلوی جلو میخواد چپونی برن تو خروجی دیگه این رو همه دیدین دیگه این اسمش زرنگی نیست یعنی انجام دادنش توانای خاص و فوقلادهی نمیخواد یه کم فقط چیز میخواد چجوری بگم یعنی چیز آقا ولیش کنین دیگه و چه کاریه نکنید نکنیم نکنند والا والا ما که بچه بودیم، آی ازمون سو استفاده می کردن در امور صفی یعنی اگه اعضای خانواده همه می رفتیم جایی که صف بود، حتما من که بچه بودم و می فرستند برم تو صف تا دل بزرگس هر بسوزه، بذارن برم جلو. حالا فرقی هم نمی کند سف نوموای باشه یا صف کوپن اقلام مورد نیاز. من کودک با خیلی زبروز رنگانه خودم و از بین بزرگتر رو می سر صف و اگه می گفتند کو، می گفتم علیم یاد رفته کیفش رو بیاره. اون وقت بود که مامان یا باب بهونه بنده می رسوندن سر صف و کارشون سری را میافتاد در واقع انقدر که من تو زندگیم تجربه انتظار در صف دارم باقی اعضای خانواده ندارن تازه فکررا میکردن دارن به من زبل بودن و یاد میدن نکنین با بچه هاتون اینجوری همون صف مدرسه براشون کافیه باقی صفو رو خودتون وایسین بزرگترا عزیز تا صبرتون زیاد شه والا دخ نگرانی ما از خودت آدمی است که میخواهد به چشم خود شهاده پیروزی باشن کامران ملکوتی سلام چه خبر سلام فرسی جان سلام همگی دو تا خبر سینمایی دارم امشب اولیش که یه اتفاق نادر تو سینمای ایران افتاده اونم فروش بی یه فیلم تو ماه اسفند فیلم من سالبادر نیستم تونسته در عرض سه روز بیشتر از دیوی ده میلیون تومن فروش داشته باشه مبلغ اینا تو اسفند ماه به خاطر بله ماجرای خونه ها و خلاص پیشواز نوروز هیچ وقت از فروش خوبی برخوردار نبودن تازه اکران فیلم هم همزمان شده بود با مرسوم انتخابات که ببینین که حضور مردم برای دیدن فیلم پرشورتر بوده تا خود انتخابات ولی مسپا حتما رأی می آورد مثلا اینم اضافه کنم که گویا ریوالدو بازیکن معروف فوتبال برزیل که چندتا هم تو فیلم حضور داره قراره برای نوروز به تهران بیاد تو چند تا مراسم ایکون ویژه فیلم شرکت کنه. به خبر بعدی فحشی جان خبر سینمایی مراسم اسکار 2016 است که تا چند ساعت دیگه تو سالن دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار میشه شبکه IBC یا ABC مراسم به صورت مستقیم تو آمریکا پوشش میده امشب باید بشینیم ببینیم کیو اسکار میگیره همینطور کسایی که اسکارو امسال تحریم کردن بالاخره تو مراسم حضور پیدا میکنن میان نمیان چه جوری بسیار خوب. از موسیقی چه خبر کامرانی راستی؟ از موسیقی هم بگم که امروز ششمین آلبوم فرزاد فرزین به اسم شیش وارد بازار شد آلبوم قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر بشه که به خاطر انتخابات خلاصه دست داشتن امروز منتشر شد تو کل کشور. بسیار ممنونم و چکرم ازت کامران عزیز. ما همیشه گردم شیش نیست به خدا ششه. حالا دیگه یک آلبومم دادن آلبوم به اسم شیش. اشکال نداره دیگه فرزاد فرزاد آره ما سن گوش کنیم می‌بینی که حالا شیشه حالا <تصفح> قافیه‌اش اینجوری بوده دیگه جور در اومده با شیش. آره ممنونم ازت کامران عزیز. خب فردا بریم این خورمون فرانه یه بخش از ترانه فرانه شیش فرزاد فرزین من میخوام پیش تو باشم که رفیق شیش تو باشم خدایی چه شایی که تو داری یکی دار عزیزم منونم که جونم با سد دل میره عشقم همه چیزم با تو حال خوبی دارم که هیشگی به هیشگی تو حالا همچین احساسی نداشته تو حرفا تو کارا همین دیوونه بازیت منو کشته یه چیزی ازت میخوام تو بیا بمون با هم. تو باید باشی با من که کتا نمیام نه نه نه نه نه, نه, غونه نه غونه. خب توی فیسبوک مریم یه کامنت داده گفته نصف زندگیمو منتظر بودم ساعت روند شده برم به کارام برسم دیگه حالا باز مال شما گیرت سر ساعت بوده حالا بعضی بیشتر زندگیشون در انتظاری میگذاره که ماه یا سال روند بشه مثلا یه کاری بخوام بکنم بعد اینا که میگن از اول ماه یا از اول سال و اینا شروع میکنم عید که بشه، سال دیگه، هفته دیگه، سر ماه بعد از وجودتون که نوید گفته بدترین کاری هم که آدم میتونه بکنه اینه که باعث انتظار پدر در مادرش بشه شبایی که من دیر میومدم خونه و یا اصلا نمیومدم فردش مامانم هم همیشه بهم میگفت امیدوارم بچه خودت هم همین کار باد بکن حالا آره واقعا یعنی چی خب دیر میخوام بیان یه زنگ به زع MS بده خون بیجیگر میکنین پدر په در بعد جواد گفته بدترین انتظار از بعد از برنامه هزار به بعد شروع میشه که ای وای من فرشید کی میاد و کی میاد ما کم نیاریم و زود برگرده زلوات دیگه اون موقع دیگه معلوم نیست من کجا باشم دی. بیام نیام بله بعضیا میگن بعد از تموم شدن برنامه میخوام برم تبعت کلام اونجا باقی عمرم مراقبه کنم نه نه تکذیب میکنم آقا من تکذیب نه تکذیبم نمیکنم نمی نمیکنم نمی احتمالات زیادی قلازه وجود داره حالا بگذریم بعد هزار معلوم میشه اما این هفته که گذشت خب هفته انتخابات بود و با توجه به اینکه استقبال از این انتخابات نسبتا خوب گزارش شده صفهای رای دادن تو حوزه مربوط هم حسابی به چشم اومد توی این صفحه خیلی وقتا خیلی از بحران‌های سیاسی مطرح میشه، به بحث گذاشته میشه و خیلی وقتا هم براش راهکارهایی ارائه میشه که اصلا های مربوطه تو خوابم نمیدیدنشون یه وقتایی هم انتخابات خیلی قطبی میشه، یعنی هیچ باید نیست تو صفحه انتخابات دعوا بشه. یعنی طرفداران این نامزدانو نام. اون نامزد یا مثلا بیافتن به جونا همون تمام هم وعدهای انتخاباتی نامزدشونو رو همچی بکوبند تو سر هم دیگه که اصلا آدم همچین بیمونه که چیکار درامی البته خب خیلی هم هستن که خیلی شیک و جذاب و بدون دردسر متمدنانه میان رو میدن و خدافز میرن ولی خواص دیگه صف که البته اول برنامه علامه کردیم مثل پیدا شدن خواستگار نشون کردن دختر مورد نظر رد بدل شدن برای شماره و چشمک و هم که دیگه تو هر صفی هست توی صفه هست دیگه البته قدیما بیشتر بود حال کمتره از راه های به حال اینا رد بدل میکنن و ولی خب دیگه خصوصا این که مثلا طرف طرفدار کاندیدایی باشه که شما می خوای بهش رأی بدی و اینها خیلی فضا فضای خاصی میشه تو این صف‌ها و تو این انتظارها عل انتظارهای دلچسبیه تو این صفحه خلاص. کاگالجه کاگالجه روزنامه روزنامه کاگالجه تو سمے شو. روزنامه ایران به نقل از آیت الله ای در دیدار با رئیس جمهور سوئیس تیتر زده بود که سوئیس مرکز صلح دوستی و همکاری است. بالا، مخصوصاً بانکای سوئیس از دیرباز همکاری نزدیکی با مقامات جمهوری اسلامی داشتند. سلام باش. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران امروز با ذکر که بیشتر کاندیداهای های پیروز در مجلس اصول گراه تیتر زده بود که مجلس انقلابی ماند من دارم فکر می‌کنم پشت این تیتر کدوم یکی از چهره های شاخص جریان اصولی گراهی پنهان شده خیلی سخته توی این شرایط بهتونیه چون این تیتری بزنی به خدا کار هر کسی نیست جدیه میگرم و ما روزنامه افکار وابسته به جناه راست امروز مطلقا هیچ تیتری درباره انتخابات و نتایج اون در صفحه اول خودش نداشت همینجوری گفتیم در جریان باشید فیلم <laughs> فردای 991 م کنار شما تموم شد این روزا برای خیلی از ما روزای مهمی می بودن بعضی با امید و شور و شغ به این روز نگاه کردیم و البته بعضی هم به خاطر خستگی این سال ها امیدی بهشون نبستیم من و تو تو سالیان گذشته روزهای تیره و روشن زیادی رو از سر گذروندیم من و تو حتی اگه نگاه متفاوتی به دنیا داشته باشیم اینو خوب یاد گرفتیم که هیچ وقت پشت همو خالی نکنیم چون فردای بیمن، من فردای بی تو فردای بی امیده. چون فردای بی من و تو همیشه یه چیزی کم داره اصلا نقطه اتکا و مرکز سقل همه ما مردم خوب ایرانند این مردم که به همه این لحظه ها این روزا و این انتخاب های سخت و آسان جون میدن پس فارغ از هر تصمیم و انتخابی دلمون خوشه به این مردم دلمون خوشه به تک تک اجزای تشکیل دهنده این توده بزرگی که برایندش میشه ایران دلمون خوشه به این که چه مردمی داریم شمالم تا جنوبم عشق. چه خاک و میدارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم می گی میز حت هیچ نیست که با سر وات باشه کسی که فرش می بافه نباید روح حسیر باشه اگر چه سختی از انسان یکو درد می سازد ولی از مردمم و درد داره یک مرد سازه شمالم تا جنوبم بهش چه خاق و گرد و میدارم یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم من و تو مردمی هستیم که گرد از رنج می سازیم به این تاریخ خورشیدی به این می نازیم من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست که از هفتاد نسل قبل هزار استوره پشت مف